طرف در محضر امام صادق علیه السلام, و السلام می گفت که خدا یا منو مورد امتحان و آزمایش قرار نده حضرت فرمودن دعا غلطه خلاف سنت خدا که نمیتونید دعا کنی خدا خودش فرموده شما رو امتحان میکنم. بسم اسم الله الرحمن الرحیم الافلامیم احس بن ناس ایوت ان یقول و آمن و لا یفتنون لایفتنون های آیه قرآنه. شما خیال کردید آزمایش نمیشید. عرض کرد آقا بس چی بگم؟ فرمود بگو خدایا یا یاریم کن در امتحان قبول بشم